مارکردنی کردنی دلیر سلین گگرانی عزیز و خوشویست لاوتن لبه خوشحالین لبشی تلونوی خوان نوکتی بی چشتی من جاوری هجاری مکریانی حتی نوالتن فرمون بو امشویش هور من بند پیش در این که هجاری مکریانی دیویست توزیگ لسر تختک را بکشی بگرت و بگرتو تو بو خیالاتی را بردوی بایلن بشه در او دست پیدا که هجاری مکریانی توزیگ خیالی را بردوی دهنه تو برچاوی خویو داله که و سلیمانی حزبی پرتی به نوی برزنی سازد را بو، عبدالله لبریکاری برزنی سروگ بو برایم احمد که اویش وک همزه حقوق بو بو, بو وکیلی داد گستاری. تا کوماله امه بو لقی که کوماله لسلیمانی سرپرشتی دکرد. دوای دویت چون من اویش بو, بو بو پارتی پارتی بو ازادی کردستان لجیر سای شوئید ده حولی ده ده. حزب شوئی بو همو دنیا و لباسی کرد و کردستان رازی نبو چونکه که بنامبر با پیودانی ستالین کرد با ملت حساب ناکره منیش و ما گوتم ببی المخابر سوری دو آتش بوم حضم لپارتی اکرد که باسی کردستان بودکو دلید بی کرد ازاد بیو دولتی کمونیستی ده مزرینه. لامل ملانی دو سروکی پارتی ده هر جاره یک یک دکاو بلامیش کامیان لناو در ندویجران. لبغدا بجاري دوام چو ملاي همزو اتر دیتا و دقل شوئيان نوانم خوش بو دقل پارتی هر دوک براش راق بو بریاری شمده بو پاش جهکاف نجمه هیچ حزبه کوا که تقلل کرکوک شاگرد بوم یکیقل دوستکانم که پش برایم همکاره بو جاري گوتي با اندام نوسی و نایو فرعید چالاق ب بلام که هیچ گویم با فرمان حزبهاتی ندا با دنجی لکرا شرکانم لبلاو کی پرتی داشت بده کرد، هموها کاری کم دگل دخیردن. شیعش دیانه ویست، اندامن بم، قبولم نکرد. لعای هر دو لب پا کو بیاترفه کی بیا غرز نسرابو مو، با قازنجم کرد بو. چاک پرتیش خویان بکل کی شوید آنیو، لعنوابو وقت صوفیو در هر دو هر با خوای کی دکن، کس جلایی لی نکردم. با دگل فلان شوید وستی، یان باش یادت با پرتی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 روژ یک حتی وی چې قوتم لپیدابو چاپ کړو د میو نه بیانکه به هزار و یک دلیل اسباتي د خرد کذبی جاسوسي انګلیزا نامش دیغو حجر تون په دوستیاتي دغل او جاسوسه حقيره به که حزب کمن کشفي کړو و یعنی تو حزبتان د ځانن کسر برج زبیحي لبن دیواری سفارتي بريتاني هل دلرزه تحقيق کړی ده نه اي نه نه وتم ده چوبه ماستابل من جاسوسی نازانم، در ځانم لستر اره د لزبیهی ايشاوه حزب یشنیم حکومت له بکا باتر اوی سارد بخواتوه قسکل بین خو منده پمواب هر هرکسی سدله کومونیستم ملائکته کو او پر اخلاق و اکار باش گیرتوته تبرو، عیب د چای منده هبه له کومونیست دانیہ بخاریست سفرکای بخارست توزه فکرم ګورا لدل خو ما وتم کور خو کومونیستانه هر بنیادم خو دروهدکن، دزیدکن، بختان بو یک تری حال دبستن، دی سندم گود، نه، هر اوانه عراق و سور یوان، کومونیستی دیکه زور بخشن. به با طیبتی کیجه ترککی لبخاریز دیتم زوری کار لیا کردم. لسر کشتی لیدیا بو یکم جار به عشق را خوم کافر کردو، شعر یکم لسر شویکان عراق دانه. لتربس پیش لجر نوی شویگ لزندن بورگلی یکم لروسی کرد. اوی زور دپرده دا، چو نه هیڅ لحالی تاله کور نه پرسن لبغداش شرکان سرکشتیشم بممستاني پرتی خويندوه کچا پیپکن قبول نه کرد غوتيان اوه بڤيا بلهمو رژدان غوت رادی به خوښتی شي خوشه اتر لدیدار خالد بغداش لو دو سفر اروپا وا دلم لکومونیست عرب رجبوبو هر دم غوت او انل رای راس لا یانداوه خلاصو بوبو نیوا وردیک که برزانی هاتو پارتی زندو بواوا، لیکم کبونوی پارتی دا برزانی همزه و در نو برایم احمد کرا برازداری حزب، واتا سکرتیر، همزهش بپانو راگل شوئیان کود، دا بیاوش بزانی، لو چند ساله دا کم لعراق بوم، هر کسی لسر هر کارکی خراب لپارتی در کرا با شوئی با حرمتو ورینده گرد، پارتیش با شوئی در کراو هروابو، که لسوریه هاتی نو دگل زبیحی پارتي کرمن زبیحوتی پارتی د له حجر دکنه لوانی پارتی متوم نایکم کاسبي د کوم یاری دښ د حجر مکریانی له ګرانه وې سې گذشته ځاني خويده لوکاتي کډګرته برابر دوه هندګ لخوا حالات کانې لې یو عدد زیاته و دګرته لوی جګه لد د ډاکټره پیاو خمو ډاکټرو پرستارو خدمتکاري تر جنبون ډاکټره کی جن بناوین نکولایفنا بسرح چن وتا غ یک را د گئیشت کمیټه لنه خوشحکانیبم ساعت 6 و 34 کی بیانی د چوینورزش ساعت 4 برچایي ساعت 29 ورجا ساعت 6 اتر تمبلو برلا دستم کړد با روسی خوندن لکټیب من دالن جنې کډاکټوري منالن بو بو استراحت او اسایشګه خوی کرده ما به هزار زحمت شتیکی تیده گایندم. روژانه پتر دو ساعت خوی دگل مندوده کردم. دیگوت دو کرمه بو خوش کم کری لشر دا کجره و تنیا مایوه. کری که خونده بو یسته کری چهه و میرد. تلفزیون و پیانو دگل اکسی که گوری بالا مارشال کوتوزوف ل لسالون بو. سینما شه بو چوار فیلمی نیشانه ده. تازستان بو ورزشی زور خوشیان سمای سرسه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 هر روز که گیم میگردی سن بالتویی که تابه تی ناوبا کولکم پیبو کل بغداد با سرمای سخت مکریبون و تیان آوانه بخار نیان پتی نیکندامه، لکن خدا در نبیل 4 و پنج کیلو خورستربو بو بالتو سر حالی نیگرد کره که عربی بغدادشیلی بود بنای اسکر ال عابی روزی پیک ول سری سرمای سر سفال وستابون هوای بر والات زرخوش بو. دیتم هر دو یهچکی آسکر وگ با یهزان چورتمیشت کردو بی خوینین لیهاتوه. منوتم آسکر؟ او یهد بو برینداره؟ دستی لیده و رای کرد. دیگوت هیچ ندیشه. گوتیان ها ها او سرمای روسیایا. پیوله دره و دبی هر دست با یهو لوتی دابنه. د دنیا بي او اگاب کا خوینن وشک د بیرو حل دورن هر که زستانه بفرنمه دشتي دورو برمان که هموشي جنگلي جوړ بو بهشتک بو په همو معنا در همو سريان له اسمانه درو دشت در مال لو نو شو سويسني زرد وسورو ګلي بو او همو ګلا جوانه نجګل یاسمنو تنيا ګلي چې ټوبي سوري اګري رنگ کاويش د چين بو بونين نه اده اټر سره بیان او یوارن پاش خوردن خواردن تا د مینوسنان لنو جنگل او د دګراینو خوشمن را ده بوډ زوربې ایوانیل اسایش غابون کلامو نزیب بسټو پنځه کس کیژولاو نیوان سالو پیربون همو زور تیار او سازو نجلک جوانبون و دبو به ماشینی خو و دهات نه دویان بیان بنو مال روجیک لا کوریک شورا ناوم پرسی اریکا کا یره پیکنی غوتی نا بلعم کا سکار کان لیرن لن زیک ما انا وکم پیکی مندالانی پیشن حبو نزیک دو صد مندال لنیوان ہش سالو د سالی تدا بو چن ممستے کی جنین بسر را د گئیشت بلعم همو کرد د بوئے بدست منالان پیکبے اویش بنورا هر دو ساعت ی روز دو مندال لبردر کا بولا لخواستان و چون ورزش و جمنان و خوتن مندالی دالی شیپوری شایپوری لیدا. من دلیل ولایتیان خیلی دختر داره کاشی هموانیان واکس دکرد چشتهن لدنه همو من دال فری همو کاریک دبن چنان هر آمرجگاری کردنو فرکر نیکاری نصبو جمهوریتی چکالا بدستی من دالانی چکالا بری وداشو بنورا ل مجلس سرکاتی دا بج در او پری تکو نظم و ترتیبینه بو لساعت یازده روز و دان برنملا جگ خوان لچم روشه دیم چکاله یک دمقاله دگل کوریشگه یکی هاو کمپی بو دی گوت تو پکم تو با اود داداو چون بردی؟ اوش هاشای دکرد که زوری به هد گوتی بشرفی پیشنگیم من ختم نبوا که جوالا گوتی بسیه باورم کرد دستیان کرده ملیه که او عشد بو نوا لوچانی هاوینه دا منالانی پیشنگ اوان را دبوردو دهت نکمپی هاوینی لدشت دورتر یک لیمه چندین قصری هایو نهواری کریه کاران ها بون کمان جی مرخصی لدشتیان راده بود سی ایکی مخارج لسر کریه کارو دو بش لسی بشی یکی شیرو گوشدگاو ماسی زور بون کده انده خواردن زور لخواردنی با شي کوردستان ده چو باقيان پي پی بو بلنده انګود زور لغوشت کي سل حز و مشروب لنو اسايشګا ممنوع بلامل دري اسايشګا مشروب قیدی نبو، بو نو نو اجازه دره شو ل جنگل تادرنګي دست جمعی بي گذرنين 203 کس هر کس افاري کي ده خواردنو خواردنوي پيدا کړدرا ل جنگل ده له دولی راین دابوار لخوار و چمی موسکو بو کلخوزه کی خوغا، کسد مالک دبو لو بری چمبو شی ها بو, بو. کوملک دچوینه اوی لبیر مشهوک دو کی چونه بردر کی مالک گوتین یاسمین من پی بفروشە پیرمیر دی کی ریدریر به دارو راوینان ک نافروشم بمن یانوت توبچو بو من بکره بر روسا لتو پتکی خوم دوای یاسمینم کرد کابرا باوشی کی بوهنم با هر کردم پولی نبیست. کبیرای پی رپیاو پیوتم. تو غریبی، تو غریبی، میوانی من یاسمین نافروشم. پیام جوانا، بالام بو تو دی بخشم. پیاو حق بله. اون من روزم دیتن. هیچ وقت خلقی اروپا و المانی آلمانی و فرانسی ناتن. کلا راست غریبان زربدای یا ولد بزن. لذیع روز وق لذیع خود دستال میوان رادگرین. بنشینن. أخلاق يانم زور كيف جرت بوي زور دل رحم و بروحم روجك هشت جنوكيش لدوري داريك هالا بون دا انروانيا هيلانيك وتم؟ او خبر چيا؟ واتم او جوزكا لهيلانا و كوتوا دار زور برزا چوني برينو اللايدايكي؟ منش واتم جوزكي قلة سابوني بدفاري سابون دز فريدن تكرا بتوريي گليان کر تو انساني داشلن شاعيري څونه توانی هیند ظالم وی غوتم بچن ټلیفون شي بانک بو تن سر د خات او نشوټین ای افرین فکرې ساکه تولق سنه خوشا كانت کردوا لنول رواردہ زور لو د زور ظلم دد پیر سیم بونن کشنو مال غوتین خلق بیازده د درونو جې دیلن تازستانن اس کو مانګای جنگل لی بلورینو لسرمه نمرن روژیک لزستان ده همو خلقی کولخوزه کا پیرو لاویان هر یکه هیلانی چې ل تخت دروز کراوین دینه ل سرو دارانین د دکته ته اگر بالدار ل گرمین هات نو هیلانې سازبه اوا زور فرق د لادی لبنان هبو کلو همو باغو دارستانه قدنګ تیرک نه حد همو یانده کوشتن تننه جاریه لبنانی چې باغوانم ل روزنامه ده خند وکچوبو لا سوارتوکه عراق به باغ پادشاه ربګه نسیبوی او عراقیا نه احمقن لقلق لسربانی مالان هیلانی کردو نیخون. من میوان یک بون ل خارج موسکو تنیه کلخوز یکم ددی که پاجی خزور پچوک لگل کی 250 ملیونی بو دژ زنین که پیش انقلاب روسیا لحان دولتانی اوروبا و امریکا و زور له بو تازش به برین دلیل شره هدلر رزغاری بو بو خریخ ساز کړنوې ویرانو ملحمدانان لسربری نه بو او کله خوژ المان جګل جینا خاپوریان کرده بو سرلنی دروست کرا بو, بو. سنگری المانانی هر له ما بو جره من ناتوانم وکي حال خوشی و نخوشی خلشي او دولت غوري کم جامګر درو دروست کم یان بيه خبر وك شعائقان عراق مل لا لفرو فیشال نمو كيت بكم بگه ده يعني وك امریکا كيت بكم بگه يعني وك امریکا پرسته كان با باشاكش يعني بلمخراب تنیا نياز موايا من او روشه قدبت بس و پین سال لموبر که سالی 1959 او کمیدیو ما باسیب کم حزیج ده کم کابران نبین کده گود لولاتی کومونستی همو هفته باران بوتوتن ده باره یان لمنو به هر اعلان دولتی کومونیست کرا دزبجه شیر وهنګيون ل اسمان را درجه د بزبزانین که فقیر کراجه می ګوره د او فقیر نه زور مندوبن ورده ورده حالی خویان خوشکن کس ل پره نابتہ کړه مل مصطفیه کتازه ل روسیا هټ بووه دربارې جیانی ولاته روسیان له د پرسی جاري وتی حال غون نشینکان دشت حویلر له د هرغو ندی دویز دروبکا شویې پارټی لېچې نه حل د قرچندو د انګود هرې لپاره نکردو توا هیڅ لته ناګه بېز نګلې کی کوم ګرانې کی زور لکل خو زو ودرد چو بو انجرامو ک هر ګوندی یک بیوې بو انجرامو ک هر ګوندی یک بیوې مانګه راګره د ل دولت ورګره روژ او اندشیر اوندرون بدا مانگا او جولک بن اگر به مرند به شیاهتی دکتوریا نسر به کبا فلان نه خوښی فوتاون د به سال اگر مانگا او جولک بره گوشت لچی پیدا دبه د به بازار بکریو بیدا بکربلستی کلخوس انقسانم لغیر بیست راست یاندرو و بال بس توین بلم خوم لسر ګولاویک شش مراويم دیت پیو کیان بو متم توقا سبنید مراوی هیچ زحمت نی اگر زورترت را گرت باباش تربو سره کی ل راوشاند اوتی بیره بدس اوانه شپه و بو ام ده هرکی هیچ بو جا اگر اوشتان ربدان دیرا حالی ایوانی ل حیوان بدوخه وردگرن خوشتر دکانک لنزیک دروازه آسایش گابو خلکی کلخوزک دهاتن سفیان دکشه تماشین ل موسکو نانی دهینه او صاحب نانی ناني خوان دكاري، ديار بو خلقه گوند بو خوان ارد ناكننان روش یک لیک اکم زوی اگر تاريو قريبه، لوانه ماشين بچاقه، او خلقه بو نان چه دکن؟ قط ماشين ناچاقه و نانيش هرده، روشنامم لبغداو بو هاتبو، لإتحاد شعب ورغان حزب كومونيستي العراق لشوين اگدانو سرابو، خانواد ورزيران لروسيا لزحمتی چشتو نان کردن و قابشتن رزگار بون. هموشت اوتوماتیکا. زنگ جگلی دادا فلان خواردن بنیره. سفری اک دیتا سرمیز رادخ ری. قابشی وکن بشوین یک دا ریز دامن. پاش نان خواردن زنگ و زرف سربخو دست نو مدبقی مرکزی گند. لوی دشورین. باور که لودمه دا که امم دخوین متر سفی نان کرن صدان میتر لدیاری دوکان وست من اندکرم یوگرانی <موسیقی> عزیز و خوشیستو حورایان دنیاک تیب لیر دووم شویە دینکوتای بشیش چلونوی خوین نویک تیب شیشت میجوری حشارمکرانی تابا شکیتر ژیانتان شادو كامران بن